حکایت، دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفتند، نان خود خوردن و نشستن، به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن، به دست آهن تفت کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گرانمایه در این سرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شطا، بیشه کم خیره به تایی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا.